أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین با ذکر صلواتی بر محمد و محمد شروع کنیم بحث امروز رو. اللهم صل علی محمد و محمد. در مقدمه دو تا مطلب رو بهش پرداختیم. مطلب اول اینکه چرا از سیره اقلائیه باید بحث بشه و مطلب دوم اینکه که که در این باب هست باید روشن بشه تا به پا توش نباشه در این بحث اصطلاحات در مورد این کلمات بحث کردیم سیره اقلائیه ارتکاز اقلائیه سیره مستهدسه امزا و آخرش حجیتی کل طلبهان در مورد نکاتی داشت. در مورد امضا که جلسه قبل گفتیم چندین نکته داشت. یکیش این بود که امضا صرف بگم صرف رضایت, رضایت, رضایت نیست. چرا این رو اصرار دارن بگن چرا امضا صرف رضایت نیست؟ چون رضایت که هچچه شریعی نداره که رضایت که هچچه شریعی نیست. لذا اینها ها رو به معنی حجم. جل حجم شهری گرفتن تا ازش بشه به حجم رسید و این نکات که حتما شما توجه داشتید بهش اینا رو اشالله با مطالعه و مباحثه برای خود یه مدار تعمیق کنید اما آخرین اصطلاعی که بهش میپردازه الحجیه این کلمه حجیت اونجاست که ما بیم سیری اغلایی حجت هست یا نیست مراد از حجیت سری اقلایه این از که آیا این سری اقلایه میشه بهش احتجاج کرد حجت میشه بهش احتجاج کرد یا نه حالا دوستان شما چون سال قبل رسائل را هم خوندی در اونجا محنای حجت رو در همون اوائل وثقت دیدی بذار راحتتر میتونی اینجا بز کنید روش احت صحت احتجاج به یک چیزی مثلا به سری اوغلا این معنای لغوی لغوی حجت است یا معنای اصطلاحی اگر اصطلاحی کدوم یکی از معنای اصطلاحی است بیرون کسی تو ذهنش هست صحت الاحتجاج ببینید بذار بخونم اینجا الحجیت و مرادنا بالحجیت سه حتول احتجاج یعنی وقتی میگیم از سیرت و و حجت و یعنی یسه حل احتجاج رو به خدا روز قیامت بگی که آقا جم چرا فلان فتفا رو، چرا فلان حجم رو انجام ندادید واجب بود؟ میگم آقا چجور واجب بود؟ روایت به ما اینو نگفته بود چرا میگی واجب بود؟ نه در آیهی بود نه در روایت بود. خداوند میتونه بخربات که سیره داشتیم و رو سیره داشتیم و شما هم از روی سیره کار کنید به این حکم برسید پس خدا از سیره میتونه بر علیه ما استفاده کنه بگه احتجاج کنه و این سیره داشتیم باید طبق اون به این حکم عمل میکردید خیلی خب و همینطور از جانب بنده نسبت به مولا بگیم خدایا ما به این حکم عمل کردیم ترک کردیم یه فعلی رو اگر خداهاد بفهمد که چرا ترک کردید میگیم چون سیده بر ترک داشتیم لذا در روز قیامت چیه؟ احتجاج داریم هم مولا نسبت به عبد و هم عبد نسبت به مولا خب حالا سوال من اینه این سهت و احتجاج کدوم یکی از اون معانیه؟ هو جذبود لوغای اصطلاحی اصطلاحی اصولی منطقی املاهی بودیم میشه منطقی چیزی برای اسکات خازی که میتونیم منطقی و جذب منطقی کهی برای اسکات نیستش او یعنی من در طریق بتونیم از اون دلیل استفاده دیدیم آقای پسر شما چیه؟ آره دوگه مراد نابل سه روش به روش الان چی بنویسیم؟ بنویسیم که همان حجت لغوییست همان حجت منطقیست همان حجت اصولیست چی بنویسیم؟ حتی وسط قرار طب. شما چید؟ آقای فرحه شما چید؟ این هم هجت لغویه دیگه مردی سب بگه های شرسی زده بابا با پاسداری اینا کار چونه دیگه هجت لغویه دیگه هجت ما یسه هل احتجاج رو به هجت میشه تو منطق اونی بود که وسط قرار میگیره یادتون هست؟ تو من تو اصول هم اون بود که هجت عبالت بود از آن چیزی که در حد قط نباشه لذا به قط میگفتیم قط حجت اصولی نیست البته بگفتیم نگران نباشه در حجت اصولی بالاتر قط لذا این حجت اصطلاعیه حجت لغریه این رو اونجا یاد داشت کنیم منادونا بالحجیه صحت الاحتجاج با این تعبیر دارم میگم ها اینی که اینجا تعبیر شده صحت الاحتجاج ولو ممکنه این رفت بگه آقا جان ما وقتی بحث حجیت سیره رو بحث میکنیم خب معلومه حجیت اصولیه دیگه اون یه مطلب دیگه است خب اینجا با این تعریفی که اینها دارن حجیت لغوی رو داره میگه فاذا اشرنا الى سیرت عقلاییت غیر مردو ان ان ها وقلنا بانها حجت وقتی اشاره کنیم به یک سیره اقلائیه ای مثلا سیره اقلا در اینکه اینجوری با هم دیگه میرسن تحییتشون این شکریه ما یه حکمی داریم مثلا تحییت وقتی شخصی به شما تحییتی گفت رسیدید به هم به تحییتی کن مثلا گفت سلام شما به... خوبه که بهترش رو به او برگرد کنید خیلی خوب سیره اقلائیه داریم که اینجوری با هم تحییت میکنن و بهترش اون یکی خب اگر به یک سری اغلایی شما اشاره کردید که رد هم نشده بود غیر مردو انعنها و قلنا بنا هجتون و گفتیم این سری که رد نشده حجت است خب همینجا یه نکته بگم این غیر مردو انعنها چرا اینجا ذکر شده؟ تو اینا رو باید دقت کنید آره دیگه چون رد شده باشه که دیگه, دیگه حجت که ریشه حجتش همینه مرد اگر مرد و اون انها باشه یه حجت که الان چون میخوایم بگیم این حجت هست پس باید بگیم غیر مرد و این انها غیر مرد انها رو هم رو هم بخونید دیگه سیره اقلایه که رد نشده است چون لغت رد لازمه ردعن فلان لذا اینجا هم اسم مفهولش رو با حرف جر درست کرده و قلنا به انها حجتون پس ما اینجا رو داریم بگیم این کلمه حجتون بگیم حاضر سیرتون اقلاعیتون حجتون چرا؟ اینجا دلوقتي. یک حلقه مفقودش خیلی که چون, دلوقتي. چون دلوقتي. بگیم برده بس میکنم آقا یک سیره درده نشده چون دلوقتي. خیر مبدوع هست این سیره اقلایی خاصی که داریم این رد نشده هست پس حجت هست حالا شواریم این حجت یعنی خودش میگه یعنی یسه اول درست هزاج جو به فما و ادیه نعنی میگم اینو قصد میکنیم نعنی فعل مضارع النهاز سیرته یسه الاحتجاج و بها به قابلیت احتجاج را داره من ناهیت شارع که کردم شارع روز قیامت بر ما و جد دارد احتجاج می کند که من به وسیله سیره این حکم رو به شما رساندم یا به وسیله سیره این موضوع رو برای شما مشخص کرده بودم چرا عمل نکردید اول مکلف مکلف روز قیامت می که این کار رو ترک کردم چرا؟ چون طبق سیر به این حکم رسیده بودن خب یه سه حل احتجاج و به از ناهی شاره یا مکلف بر چی احتجاج بشود؟ علال امضا ببینید این احتجاج سه تا جارومنجون داره احتجاج به ها اینه من ناهی مکلف یا شاره وز نبانی جارومنجونش امزا امزا امضا این سه تا جار رو نشروع حالا ایتجا امضا امزا هم دیروز قرار شد به این منا باشد که جرد شد رضایت حالا, حالا نظر دوستان چی بود فکر کردید روش امضا؟ البته بعدا اینا رو بحث کنیم بهتره. حالا فعلا امضا به منی جل یعنی اگر سیره ای از اغلا داریم شارع امزا کرده است یعنی راضی به اوست یا نه یک کار ثبوتی هم انجام داده صرف رضایت نیست اما باید جل هم کرده نظر تو چیه به نه تحسیس چیه یک کار ثبوتی یعنی این دیدو گفتیم دیگه. این سیرهی که هست اقلای این ها انجام میدن شاره میگه خیلی خوب من هم رو حکمش میکنم یا مناسب او رو حکم جرم میکنم تحسیس مثل منو سیره اقلاست خود سیره هست نه نه نه, نه, نه. تحسیسی رزای تو چیه؟ شیوا چی با چی مترادفه؟ آدم راز نباشه که جرمه خب این حرفت که ملازمه رو نشون میده بند افادا میگی تا رازم رازم جلد. جلد. جلد. یعنی رازی نماشه جر نمیکنه یعنی راضی باشت جر میکنه این چه تلازم شد در تلازم چه, چه فرمان داره چی چی چی این دوتا رازم بودن در جرم ببینید تلازم با تلازم فرق کنه مثل قبلا میگفتیم تو. مهربان بودن با بخشنده بودن تلازم داره یا تلازم میگن بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان این رحمان و رحیم از رحمس به معنی مهربانی بسم الله الرحمن به نام خداوند بخشنده رحمان به معنی بخشنده است بخشنده بودن لازمه رحمان بودن است یعنی مهربان هستن تا می بخشد چیزی را به شما لذا اینجا این اشتباهی که توی ترجمه مشرور شده اینه که بخشنده لازمه معنی نه خود معنایش این رو آوردن ذکرش کردن حالا اینجا امضا لازمش اش است یا معنایش جلع است ادعای اینها این بود که امضا معناش جلع است ببین تاجه کردی متوجه شدی تو کلا تو معنای لغوی فهم قرآن و حدیث و اینجور موالد حواستتون به این مطلب باشه. وقتی معنای واجیه رو میخواید بررسی کنید موازه باشید معنای خودش رو بگید لازمش رو نه. چون خودش رو استعمال کرده لازمش رو که اونجا تو اون بسم الله گفته بسم الله الرحمن نموتی واهب اینا رو بسم الله الواهب نگفته لذا بخشنده من نمیدان از کجا سامراش سمارشی که اون میشه غلط اون میشه لازمه این میشه دراز میشه ثمره سمارش یا به این رضایت نه اگر امضا به معنی رضایت باشه ممکنه اینا گیر بزنه بگن که آها خدا راضیه حالا برو به دل جهل اما اینا میگن نه امضا خودش به معنی جهل امضا که ثابت صابتش ثابت شد نه خدا بعضی وقت راضیه ولی چون پچمی جل نکرده ممکنه دیگه احتمالش رو میدیم نه دیگه <تصفح> <تصفح> الان من راضیم الان من راضیم این مدرسه الان مدین مدلسه... مدرسه مثلا راضیه این مدسه دو سه روز تحتیشه پس پچمی این تحتیش جل کرده <تصفح> این رو فکره این رو فکره من اعبادت کنم این رو باز <تصفيق> علم مثلا راضیه خودش باید توضیح بده ولی من اینو <تصفيق> من تفاهم این نمی‌کنم ولی الان مدیر راضی باشه که این مدرسه تعطیل سروش به اینو تعطیلی باشه پنجشنبه هم تعطیله ولا چیز دیگه این به معنی جله حکم تعطیلی مدرسه باشه روش عمل نکنید من توصیه می‌کنم خب همین رو گفتم منم رضایت اولش یعنی رضایت میشه گفت ملازمه با جنه حجمه تازه با این مثال که زدن اصلا میشه با ملازم هم نیست هلی وقتی رضایت هست ولی مانعی در کار رضایت میتونه مقتضی باشه ولی علت تام که نیست پس حواظ کن به نکته ها باشه حالا اینجا, اینجا. بله رضایت به تنهایی چیز؟ نیست بله دیگه به تنهایی نمیشه ازش جر رو برداشت کرد و بعد گفت که دیگه گفت ما سیره رو برای حجم میخواییم لذا جعر باید توش باشه خب حالا اینجا میگه و قرنا به انها حجتون این حجت است نعنی انها به سیره یسه هل احتجاج رو بها من ناهیت شار اول مکلفه علال امزاد حالا امزا ای جل شاره یعنی این سیره جل شاره رو برای ما به ارمهان میاره میتونیم تب این سیره احتجاج کنیم که پس آی شاره شما جل کردی شاره میتونه بر ما احتجاج کنه که آی بنده جل کرده بودم چرا عمل نکردی حالا جل چی؟ مماس لا اول مناسبه لها میگه تیریش گفتم دیگه او الا صحت ما بنا عليه او بلا حاجت الى الا امضاء این مطلب جدید هست اینا باز از نکات اینجا نمیگفت بهتر بود که اینا بعدا بحث بشه میگه ببینید یا این سیره طلب بر جهل امضاء دیگه امضاء یعنی جهل یا حالا تو صفحه بعدی رو خواهیم بعضی وقتا سیره کاشف از صحت اون کاری که انجام میشه اینجا دیگه امضا و جلشاره لازم نیست حالا همین مقدار که گفتم همین مقدار داشته باشید صرفیه بعدم اینو بیشتر کار میکنید روش پس ببینید سیره یا کاشف از اون امضاست. یعنی حجت بر اون یعنی جلشاره حکم مماسل یا حکم مناسب را بعضی بفتا هم امزا اصلا امضا لازم نیست همین سیره باشه برمشه این کار صحیح هست سیره باشد اون کار یعنی صحیح هست حالا این امضا و جرش حاله اصلا نیاز دوش نیست لذا این رو اینجا تذکر میده سفیر بعد اینو باز بیشتر بهش میپرداسیم پس عبارت رو یه بار روهم میخونم علال امزا او الا این او الا قطع بر اون امضا هست. پس اینجا یه جوری این رو روشن کنید که احتجاج به علل امضا امزا او علا سهت اینجا به این رو برای کنم علال صحت او علا سحط. اون کاری که انجام میشه صحت حتما بنا, بنا علیه الاغلا امزای اغلا امزای اغلا سوالات خود سوالاتت خوبه ها ولی امضای اغلا چیه؟ جلو همه کار چیه؟ شاره سیر کار است. امضا کار شاره خب حالا امزای اقلا پس عبارت درست او اولا سه ما بنا علیه ال بلا خاجت نلن امزایه با نگرم نگاه کنیم که سرخی بعد اینو ببینید اونجا هم دادیم. بسیار خوب اصطلاحاتی که بخواستیم تمام شد هم دلاله اما بریم وارد اصل بحث ها بشین الفصل الاول و اقسام و سیر ال سیره های چه اقسامی دارد و منات حجیتش چیست؟ اقسامش یه لحظه قبل از که بخونیم با هم فکر کنیم روش سیره چه اقسامی میتونه داشته باشه؟ اصلا به یه عبارت بهتر چه تقسیماتی میتونه داشته باشه؟ متوجه شدید؟ اقسام با تقسیمات میکنه. اقسام یعنی سیر اقلها رو بگیر ببین چند قسمه تقسیمات یعنی که ما سیر اقلها رو ببینیم از چند لحاظ با چند ملاک تقسیم کنیم حالا این تعبیر اینا اقسامه یعنی یه تقسیم و چند تا قسم به ما بیدیم به نظرتون سیر چه چجوری میشه تقسیمش کرده چند قسم داره سیر اقلها خیلی مثال زدیم براتون سیر اقلها در اینکه پوشش دارن سیدی که چه نوع پوششی دارن گفتم تو جلسات رسمی کت و شلوار میپوشن مثلا بله یا با اینو یه خود بازش کن ببینم مترجم شدی میگی یا سیره بر و سیره بر موضوع خب خوبه. خوبه. خوب خب هم همینو گفته حالا چون همین رو گفته روش بس بکنی بفرماید ببینید شما دوستانم همه وارد بس بشید موضوع خمش رو میدونیم مثلا خم حرام و حالا مثلا به این ماده که ای ای مثلا همین آب جو. و آیا به این هم خمش میگوید من پس موضوع رو میدونی؟ بگو خمش رو میدونیم خمش رو میدونیم ما یه حکمی از شارع اومده حکم رفتار روی موضوعی آردو. حکم رو میدونن حرمت به قولشون خمر حالا آها آه حالا می خوام همین هر چیز هم شراب خیلی چیز داری داری. مثلا انگور و وای راو مثلا ژاپونیا به این شراب شراب به رنج جام خب حالا سیر اوقلا این باشه که فقط مثلا مال انگور رو بگه این چی میشه نتیجهش این نتیجش می که این طرف که حرمت خرم فقط رو همین مورد میره دیگه اون یکی ها رو حالا یا اونو دیگه از روش های دیگر باید استفاده کنیم مثلا از روش های تنقیه منات استفاده کنیم بگیم اونم منات این مسکر بودنشه اونم مسکره پس تنقیه منات اینا رو آخره کتاب تا بحث میکنیم. که وقتی یک چیزی حکمش برای مشخص شد همون جا این حکم منحصره در اون میمونه یا میتونیم اینو سرایت بدیم به موضوع دیگه تنقیه مناط یکی الغای خصوصیات بگیم ما این خصوصیات نداره خمس خصوصیات نداره چیزا دیگه هم باش که سرایت پیدا میکنه و امثال اینها اما اون قسمت اولش گفتید برا بله درسته چرا؟ این دیگه سیره بر موضوع میشه سیره اغلاییه که در موضوع می درسته سیره در حجم چی سیره چون گفتیم تقسیم میکنیم سیره اغلا اطمان تقسیم خوبی هم هست و این رو کتاب گفته بس بس اول امروز ما معنای خودجیبیت این از این بحث دوم ما اقسام سیره اغلا میگه پیشنام در آقای این بود سیره در هوج نصیری را موضوع سیری در موضوع رو گفتیم الان یه مثال زدیم حالا این مثال شاید. درست باشه یا درست نباشه ولی اصلش درست بود اصل اینکه اینجوری نگاه کنی درست بود سیری در هوج بشی سیری در هوج ماشید. یه طور فیک کردن چه جوریه اول موضوع سلام راهنما یکی دیگه رو یه سیره میاد مالی یه سیره شما ادعا این پوچ بشه گوش پوچ یه پوچ میاد ولی سیره درمان سیره مالی مقدمه چه مقدم است سیره مقدمه برای شما میگی بگو همون دلیل دیگه سیری و دلیل و حجت درسته با سیری و به حجت خواهیم رسید خب یه مثال بزنید دیگه اینم مثال زدین چطوره مثلا که هر چیز برو؟ خب یه بحث این رو خط نکنید تذکر دادم قبلا جا داره دوباره تذکر بود با حکم عقل اع... آره. با حکم عقلی یا اشتباه نشه ها حالا ممکنه این چه دارید بگید من تو عقل خودم یکی چیزی رو دارم یا حتی ممکنه با این اشتباه با ارتکاز اغلایی اشتباه کنیم در حال که توضیح دادیم ارتکاز اغلا با سیر اغلا دوتاست دیگه ارتکاز درونه سیره که داریم بحثش شما میکنیم یه چیزی بیرونیه نبود خارجی داره پس شما الان یه مثال بزن بگید چون اقلا این سیره را دارند پس این شارع طبق این مماصلش یا مناسبش حکمی جل کرده خب این سیره در حکمی میشه دیگه نه در موضوع اگر بگیم آره بزنید همین درست کن مثال این تو دیتنه رو خودم مثلا بله اونم به ساله خوبیه بله بله حالا همین لباس شعرت رو بگم این که الان خوب بیشت به پرداسه اینه که ذهنتون باز بشه ببینید هی باید مثال پیدا کنید یادداشت داشت کنید لیست کنید و بسازید اصلا سر کلاس هم همراه بشین اصلا سر کلاس هم حالا این چه پنجا دقیقه که با هم هستیم رو اصلا حواستون پرس نشه کارهای دیگر رو ویل کنید زنگ بدی کارهای واجبی که دارید یا اختشاشات و سیاستون همه رو ویل کنید فقط بیاید تو همین بخص چون ما لازم داریم حسابه خوندن یه روش کمک به همین نظام اینکه که اینا رو خوب بخونیم ده, ده تا مرجع تقدید ولایی اونجور که میخوایم باشه بهتر از اینه که یه دونه مرجع ولایی داشته باشیم پس باید کار کنیم من از این میترسم روز قیامت بگم که آقا تو تدربه بودی یا نه میگم میتونستی یه مرجع تقدید ولایی خوب باشی یا نه میبر پس چرا نشدی شدی یه تدربه ولگرد تو خیابون و تو فیزی و تو مدارس رو اگر شدی نظام می شد. نشدی نظام تذیب شد بیا بایستانجا مسئولی اونجا چیکار کار کنیم چی جواب بگیم هیچی نمیشون دلیل و حجتی هم ندارم بگم من مثلا زهنم زعیف بود. نه زهنم هیچ کدوم از ما غیف نیست. هیچ کدوم از شما. توی مدرسه زهن زعیف من اصلا ندیدم. از اول تدریسم تا حالا. بیست و چند سال تدریس میکنم. من زهن ضعیف تو. شاید مثلا یه طلبه باشه که این شور شورزاره. روش هرچی بکاری فایده نده. یه طلبه شاید دوده باشه. لذا اینها رو خوب بخونید، اینها رو خوب بخورید، هر چقدر قویده حالا مرجع درم نشده این یه استاد بشید یه استاد بشید که در تا طلب آدم یاد بده که بابا جم ولایت محصه مهمتریه ولایت از چیزای دیگه از اقتصاد مهمتریه طلبه چی من بیا گرونی و فلا رو اینها بابا جم یه مطلب ولایت یه مطلب. گرونی چه سهله اگر اومدن سرتن باریدن نباید از ولایت دست برده. همین طلبه هم لباس ما بیم. چه حرفایی زدن چه الان محرم که رفته بودم شهرستان این رو بگم بایده بس بشیم یه چیلیپی از یه آخوندی پخش شده بود امیدونه توانا شما هم دیلیم تبسر پخش شده بود من خودم نگاه نکردم حالا اونجا شهرستان که بودیم نشونم دادن یه پیر مرد مرد تقریبا هم هست آخونده موسینی هست میگه ما چهل و سه سال به مردم درو گفتیم ما چهل و سه سال چهل سه سال به مردم نمیدن شاید خودت درو گفته چی درو گفته؟ ما چی گفتیم؟ مردم نمیدن فهمیدن ما چی بیدونم. انقلاب رو گفت انقلاب درو گفته به مردم همین هم من گفتم همین یه چیلی پاعز میشه، بسیاری از من هر چی رو ببینه از نظام زده میشه دیگه از از روحانیت از اسلام از دین از حکومت اسلامی از ولایت فخیمینو زاهر زده میشه دیگه تا آخوندن فاست گفتم خیلی ملعون این مردک خیلی هر چی بوده نمیدونم چی بوده بعد جالب همین محرم چه بودیم حداقل دو سه تا از فامیلای خودمون که سالهای قبل محرم میومد حداقل حیاتی که من میرفتم میومدن میگفتن به خاطر تو میام اون هم دیگه نیمدن یعنی طبعا من رو نگاه میکنه میرم شهرسته میکنی شهر جبادم های برد برد حالا ماها رو چون میشنسن میدونن ماها دوز و نیستیم میگه اینا برد برد بی اطلاع اما اون یکی ها نه اونا دوزه اون روحانیت رو که میشنسن میگه اونا دوزن چرا خودتون گفتیم گفتی؟ چرا سه سال به مردم دروب گفتیم اون هرها اینا خب نیست لذا من ارزم که زحمت بکشیم، کار کنیم هر چقدر میتونیم بگیم خدا یا ما برای خدمت به اسلام و نظام کار میکنیم دست میکنیم تقوار رو را عیق میکنیم در حد خودمون دیگرانو بقیهش دیگه با توی دیگه بقیهش با ما نیست انشالله لذا اینها رو جدی بگیرید درست های دیگه رو هم جدی بگیریم، کار کنید تقوار رو هم جدی بگیریم. و ان که خدا کار این نظام رو پیش می‌باره با این چیزها مشکل پیش نمیاد انشاءالله بسیار چی داشتم میگفتم لباس شهرت اه لباس شهرت فرض کنید که دو دو جور میگم که کاملا براتون جا گفته یه وقت میگیم لباس شهرت در نزد اوغلا انجام نمیدن نمی پوشند و پوشنده هم مورد مذمت یعنی سیره او بر مزمت شخصی که لباس شهرت می پوشد است خودشون هم لباس شهرت نمی پوشند درسته خیلی خوب این سیره خیلی سیره خوبیه خیلی سیره خوبیه با اون شرایط و حجیتش که در مرآ و مثمر امام بوده یا امام خودش یکی از همین افراد بوده که این رو انجام میدادن اون مرامبس هم هست مزفرم این رو تحکید جایده کرده من اروز هم نگاه میکردم تصریح مزفر هست اگر همچین سیره اقلایی با شرایطش ثابت شد شما بگید از این کارخونه چی در میاد خروجی شیر نهاج چرا؟ چون امضای شاره دیگه هم زار شارب معنی جله حکم که لباس شهرت چیه جایز نیست این سیره هم... حالا این سیره در حکم بود یا سیره در موضوع بود علی گفتین همین گفت سیره در حکم بود دیگه چون سیره حکم به ما داد حالا همین رو میخوام تو میخوام بر برم با بابا حالا میخوام ببینیم شارع چه گفته لباس شهرت ممنوع لباس شهرت چیه؟ دوباره میتونیم از سیره استفاده کنیم باید, باید ببینیم اقلا مثلا مردی که لباس زنانه بپوشه زنی که لباس مردانه بپوشه در سیر اقلا اینو لباس شهرت میدانند ببینید با این سیره موضوع برای ما منطقه شد پس این هم سیره در موضوع بسان لباس شهرت بس سیره زمان داره برای بگه آره مشیت بود الان دیگه اون نیست بله بله اون دیگه تو فقه اون دیگه واسه تو اصول هم اینقدر چه بگیم سیره بزشورت. یا میاد حکم رو به ما میده با اون امضاء یا موضوع رو منقحه میکنه خب حالا ببینید وارد بحث بشین همین از فاعل اقسام سیره داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم تنقص مسیر الاقلایتو اینو سیره نholding سیر جمع سیره تنقسم و سیرال اقلاییت و الان قسمه به دو قسم. پس این نکترم تذکر بدم. تقسیمات به شما نگفت. یه تقسیم گفت. که دوتا قسم داره سیره. در حاجه رو روی فکر کنیم که شاید تقسیمات متعددی داشته باشه. از یک لحاظ این تقسیم شده که به دو تا پچم ممکنه بگیم سیره یه تقسیم دیگه هم داره تقسیم دو بو. از یه لحاظ دیگری سیره تقسیم میشه به فلان و فلان میتونین میتونید روی توش را برید توش فکر کنیم اینا رو فکر کنید ذهن تو خیلی طبیع میشه خیلی باز میشه. بگیم آب من به شما فکر کنم سیره از یه جهت های دیگه هم مثلا. سیره تقسیم میشه به سیره مثلا مستهلسه و معاصله عیمه ببینید خیلی راحت پس تقسیمات زیاده این باب باز شد خیلی تقسیم میتونید برای سیره داشته لذا کتاب که دقیقترن میگن که تقسیمات سیره نه اقسام سیره این یه تقسیم آره سیره های متبر سیره های غیر متبر سیره هایی که حالا این کتاب شاید بتونه جواب بده بگه اون تقسیمات رو الان نیاز نداریم همین تقسیم که الان هست نیاز داریم برخواه تنقسم و سیرول اقلائیت رو الاقسم اینه القسم الاولو از سیرول واقعت و فی طریق اثبات حکم شریق من براتون مثال سدم مراهلشم تحلیل کردم باز کردم براتون حالا مثال اون حق مارنهی که آیه چمسی زدم پسندیدن و خوششون اومدهونو دوباره بگیم سیره و غلایه داریم برای اینکه اگر شاخه میوه از دی، دیوار زده بیرون اون محدودیتی برای خودشون قائل نیستن سیره و غلایه که موقع شدن اون به مرتب میخورن البته نه که چیزایی بیارن پرش کنن بزن صندوقدار ماشین ببرن اون نه ولن تو پول کنن نه اون نه اون سیره معلوم نیست اما این سیره چون جا میخورن اون م... مشکل نداره خب این به ما هورچ میدهد و ده ها شاید صد ها سیره دیگر که به ما حکم میتواند تواند هر قسم دومش هم ببینیم صفیه بعده قسم ثانی از سیر مرتبط و به موضوع حکم شرعی سیرهایی که موضوع حکم شرعی را بر ما مرتبط است. نمیگیم منقه چون اون یک. سیرهایی که مرتبط به موضوع حجم شرعی است خود اون سه نوع داره نوع اولش ما یکونو به نفسهی موضوع اندل حجم شریعی خود این سیره موضوعه مثلا خدا گفتی که این سیره شما اینجوری نوع دومش ما له دخلان فی تنقیه الموضوع و تحقیقه هی سبوتن این هم همون چیزی که ما بحثشی کردیم و نوع سومش ما لهو دخلان جنر رو میرسیم این اما مورد اول قسم اول از سیرال واقعت و فی طریق اثبات حکم شریع المقصود و به هازرخه اسم مقصود به این سیری که حکم شرعی ازش اثبات خواهد شد نه اینکه که مرتبط به موضوع باشد ما یرادل استدلال و بهی آن است که استدلال به آن مورد نظر است استدلال برحجم شرعی فقهی یا اصولی یادتونه تو توضیح ضرورت بحث از سیره گفتیم چون سیره در اصول, در اصول برای ما یه سری بحث ها رو اثبات میکنه مثل حجیت زواهر رو خب الان همینه پس میشه سیرهی چه متعلق به حجم هست بعدش گفتیم بعضی از سیره ها هم برای ما اصلا مسئله فقهی رو اثبات میکنه. لذا اون سیره میشه مسئله اصولی خودش. طبقه اولیه میشه. مبادی اصول طبقه دوم میشه. خود بحث اصولی. حالا اینجا اشاره به همونه. میگی که استدلال علال حکم شرعی الفقهی مثل همین مثاله همی که الان گفتیم حتی ما ربونیم اونان دباس شهرت به نرفا. اول اصولی چه مثالش هیچ وقت فراموش نکنید حجیت زواهر و حجیت خبر واحد رو یه yeah. سوال بپرسم اون تمرین بدم ذهنتون رو روی فکر کنید استصحاب رو از شما می‌خوام توضیح بدید چطور میشه با سیر ثابتش کرد دلیل بر استصحاب چیه الان بین علماء در این یعنی چی؟ یعنی چی؟ نشونم آره باید دیگه صحیح زراره صحیح اول زراره این رو میخوام بازی کنیم با هم دیگه بازی علمی همین استثاب رو فرض کنید روایات نبود از چیره استفاده کنیم خوبه دیگه باشه بگو خب بگو استصحاب بگیم میشه با سیره اثبات کرد به این مدل اگه این باشه اثبات بگو بگو ها آها میکیم بنای اغلا سیره اغلا بر این است که اگر در جای شک کردن و حالت سابقه داشتن بنا رو بر قبل میزنن یعنی الان دارم میره میگه نمیدونم الان میدان انقلاب تهران هست هنوز یا دیشب تو اختشاشات کلا از بین رفته میگه شما که بوده دیگه یعنی اغلا چکار میکنن این حالت سابقه رو لحاظ میکنن و این حالت سابقه با اون توضیحاتی که در حجیت سیره هست نمیرم مرام اصلا امام بوده و امضای توش هست و اینا این رو که گفتی یعنی جله یعنی این اساس ها حکم شرعی شو ببین اینجوری روش فکر کنید اینجوری کار کنید با هم دیگه تبادل نظر کنید بسیار حالا امام مثلا به استشاره آروم هست یا نه استشاش بوده الان دیشب پریشا هست یا نه هست خمم هست, هم هست؟, هم هست. هم. دیروز رهبری یه نکته خیلی مهم یعنی نکاتش که همش مهم بود یه نکته خیلی مهم بود خواست. نه اون خواستش نه مهم بود ولی اینجا شو میخوام بگم یه علت این که این اختشاشات فرم کنه ویل کنم نیستن یعنی خیلی زور زدن این اختشافات قوی تری هست نسبت به قبلی ها شاید پلو نظر من یه علتش علت اصلیش اینه که الان نظام رو ریل افتاده بعد از اینکه اون مسئولین بی کفایت و ملعوم رفتن نظام الان رو ریله یعنی داره مسیر پیش رفتشون میره هنوز خب اوائلش سخته دیگه بیماری که سرطان داره بخواد درمان شده خودش طول میکشه اون فوری که یه لحظهی که درست. الان تو این شرایط هست. آقا فرمودن که کشور در حال پیش رفته مشکلات داره حل میشه. مشکلات قدیمی، مشکلات کهنه ای که داشتیم، درد های کهنه ای که عادت کرد اونها کم کم میخواد درست شه. این دولت این آقای رئیسی که هست، حالا ما اشخاصی کار نداریم، ولی دولت انقلابی و دولت الهی و خدایی که رو کار باشه، با صرف نظر از اراداتی که داره، معصوم چه نیست؟ این پرواز میده اصلا جامعه رو خیلی پیشتر رضا قرب اینا رو میدونه نمیگه خب دیگه روحانی رفت رئیسی اومد نداره کار کنه. نه. رئیسی اومد یعنی در ذهن اونها کار نظام تمام باید این رو جلوشو بگیریم یعنی طرفی ها هر جوری میخواد بشه, بشه بشه فقط این نظام باید از بین چون بمونه کارمون ساخته هست سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی هر, هر جهتش لذا این ها با تمام توان آمدن میدان ویلکون هم نیستن و با این فرمایش که آقا هم دیروز گفتن من برداشتم یکی که فعلا این مشکل فعلا انگار برصرف شدنی نیست چون دشمن ولکن ویل... ما نیست ولی خب ما این سریوز خیلی ما ایران سن سلیم ارغ بولان کرد، allerlei تظاهراتی کیردن، ما خودمون رفتیم و باشمن اورتوم و شرکت کردیم. ام بدون آزادی تا بدون انقلاب آدم اون از حیث وسعت و تعداد آره آره ولی این این مورد فسیه الان حال حاضر این یه خصوصیت دیگه‌ای داره، اینش قوی‌تر. اون اینه که از حیث حبریات و رسانه و مراقبت که نه. نه الان ببین مثلا همه ما نیست که الان من نه, نه نه نه ببین سخت مفساریشو سخت مفساریشون نمیگم منظورم این فتنه بدتره نه مفساریه یعنی الان تقریبا <قلنجوكوش> خیلی هی دیگه شمشی رو از رو است. اون موقع ها پیشه ها و فوتبالیستان نمیتونستن اینجوری چیز بگن الا الان راه هر و شما. موقع این موقع هم پایی نفسار مثلا من که بیاست شما شاید مثلا من این اینستاگرام ها بگوستر کل هنرمند ها یعنی شما هم بخواهد بگید که رو مرچنی واسه چی دفت بزنید این شروع شاید بشتر بار خیلی خوب پس انشالله آن که انشالله که انشالله که اینجوری باشه. خیلی خوب مهانسه. پس من آبا آی نظر آی شمسیزاده رو حجت میدونم و خیلی خوب پس انشالله که این فترم بدتر از فتنای قبلی نیست ولی به هر حال نمودش بیشتره یعنی فوتبالیست و سلیبلیتی ها ها چیزایی میگن که ما قبلا خیلی نشیده بودیم ان که الله که اینم برطرف بشه نظام الیج کلاس هم گرفته میشیم هم اون وقته جوانی 2006 بود تیم ملی ما با دستم صفر بود بله بله درسته یادم هست خیلی خوب توکل خدا ان که خدا عنایت کنه دعا هاتون رو این قرار بده که اللهم اصل كل فساد من امور المسلمین ان شاء برطرف بشه بسیار ما صدق وقت داری. این الان خاطر تو بخونیم دیگه کما یستدل علی مملکیت الحیازه شرعا این مثال است بر استدلال به سیره در فق استفاده از سیره در حکم فقهی یستدل علی مملک بودن حیازه شرعا یعنی مملک شرعی باشه ببین در عرف اگر کسی رفت یه گنجش که از روی درخت واسه شکارش کرد گرزه الان اومده تو قفص انداخت این گنجش که در قفس عرفا مال چیه مال خودشه پس اوغلا مملک میدونن این حیازت را برای این شخص ولی این مملکه اوغلاییه این به درد ما نمیخوره اینو که تو رساله نمی نویسن که تو رساله مملکه شرعی رو میگن یعنی باید بگیم اگر تو رفتی همش ماهی گرفتیم، من گرفتیم سنگی رو رفتی سنگ رو برداشت رفت کوه دیدی این سنگ خوشگلی از برداشتید خب ماهی تو شد دیگه آیا شاره این رو قبول داره یا نه میگیم چون اوغلا کار رو میکردند و میکنن شاره همین رو امضا امضا چی گفتین جلوه کوچیک یعنی شاره رو قبول داره پس مملکه شرعی است این میشه حکم فقهی هیچ از سیره به دست حالا اینو میگه کما یستدل و علا مملكیت حیازه حیازه هنی به دست آوردن. شرعن این شرعن همونیه که ما لازم داریم حکم شرعی میخوایم. به سیرت الاغلایی این استدلال بر حکم به سیره اغلایی شد القائمه سیره اغلایی کدوم سیره ای چه که قائم است الانمن حوازش ایم کسی که چیزی را به دست آورد من الاموال منقولت المباحه مال منقوله مباح منقول باشه یعنی درف که روی زمینه دیگه اونو نمیگه اون به مطلب دیگه است اما یه سنگ رو برداشت این مال منقوله و مباه هم هست مال کسی نیست که اونو برداشت ملکه ها فلسفه این فلسف متعلق به استدلاله یوسدلاله یوسدلاله یوسدلاله استدلال میشواد در فقه بر این حکم به وسیله سیره عقلايه و یوسدلایه به اصولی هم بزنیم علا حجیت زواهر شرعن به سیرت اغلاهی ها. آجان بین اغلا زواهر رو حجت میدانند خوب این به درد نمیخوره ما باید شاره رو هم به دست بیادیم که موافق هست یا نه خب سیر اغلا بر این بود شاره همین رو امضا کرد پس حکم حجیت زواهر بر شرع هم هست این هم استدلال به سیره در حجم در اصول فلوسو نعم قد يسطر له في باشه برای فردا الله فردا چه تعتی شنبه باشه ما میخونیم از عذر میخوام حاشیه رفتم سلامت بفرستید